ای هدهد سبا به سبا می فرستمد. بنگر که از کجا به کجا می فرستمد. حیفه از تایری تو در خاکدان غم قم. به آشیان وفا می فرستمد. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست. می بینمت ایان و دعا می فرستمد. هر صبح و شام غافله از دعای خیر در صحبت شمال و سبا می فرستمد. تا لشتر غمت نکند ملک دل خراب جان عزیز خود به نوا می فرستمد ای قائب از نظر که شدی همنشین دل می دعا و سنا می فرستمد در روی خود تفرج صنع خدای کن کاینه خدای نما میفرستمت تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت ساوی بیا که عاطف غیبم به مشد گفت با درد صبر کن که دوا میفرستمت حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر تو است بشتاب که اسب و قبا می